قصه های هزار یک شب شبه بیست و دوم چون اهدب آواز وزیر بشنید گمان کرد که افریت است. در جواب گفت یا شیخ العفارید از هنگامی که مرا در این چاه سرنگون کرده ای من سربر نکردم و سخن نگفتم وزیر گفت من نعفریتم من پدر عروسم اهدب گفت برو و مرا به حال خیش بگذار تا افرید باز آید به من تجویز نکرده اید مگر معشوقه گاومیشان و معشوقه جنیان را نفرین حق بران کس باد که او را به من تزویج کرد وزیر با وی گفت برخیزو از این مکان بدرای. آی قهدب گفت مگر من دیوانم که بی اجازه افرید از این مکان بدر آیم با من گفته است چون آفتاب برایت از این مکان بیرون شو و از پی کار خیشتن رو تو اکنون با من بگو که آفتاب بر است یا نه که تا آفتاب بر نیاید من از این مکان نتوانم برایم. وزیر با اهدب گفت تو را در این چاه که فرو آویخت. اهدب گفت دوش من از بحر دفع پلیدی به دین مکان آمدم. ناگهان از میان آب موشی به شد و بانگ من زد و بزرگ همی شد تا به بزرگی گاو میش گشت. و با من سخن گفت که هنوزم آن سخن در گوش است تو مرا به حال خیش بگذار و راه خود در پیش گیر نفرین خدا بر کسی باد که این عروس به من تزویج کرد پس وزیر پیش رفته او را از آن مکان به در آورد در حال اهدب به سوی سلطان بگریخت و آنچه از افرید بر وی رفته بود با سلطان باز گفت و اما وزیر در کار دختر خود حیران بود گفت ای دخترک مرا از کار خیش آگاه کن دختر گفت همان پسر خوب روی که مرا بر وی تزویج کرده بودید دوش به کارت از من برداشت اکنون از او آبستنم اگر سخن مرا باور نداری اینک دستار اوست که بر فراز کرسیست و ردای اوست که در نزد بالین من است و در میان ردا چیز دیگری نیز هست که نمیدانم آن چیست چون پدر عروس این سخن بشنید برخواسته به هجله آمد دستار حسن بدردین را دید که به دستار وزیران بسره و موسل همیماند پس دستار را برداشته در خارج و داخل آن به تعمل نظر می کرد. که دید تعویزی در گوشه کلاه دستار دوخته است آن تعویز بشکافت و ردا برداشته بدرهی که هزار دینار آن بود در میان آن بدید بدره بکشود شود در میان بدره یافت ورقه بخاند دید که مبایعه یهودی است با حسن بدرالدین پسر نورالدین مصری در حال شمسدین فریادی برآورده. بی خود بیافتاد چون به خدا گفت سپاس خدای را که به هر کاری تواناست ای دختر آیا میدانی کیست آنکه کارت از تو برداشته؟ دختر وزیر گفت نه نمیدانم وزیر گفت او برادر زاده من است و این هزار دینار مهر توست ای کاش میدانستم که این قضیه چگونه اتفاق افتاده پس از آن هرز بگشود و به خط برادرش نظر افتاد گفت بوی پیراهن گم کرده خود می شنوم. گر بگویم همه گویند است قدیم پس از آن هرز برخاند و تاریخ تزویج دختر وزیر بصره و تاریخ ولادت حسن بدردین را آن هرز نبشته یافت و دید که تاریخ تزویج هر دو برادر یک ماه و یک شب و همچنین ولادت حسن بدردین با تاریخ ولادت دختر او یکی است. در حال ورقه گرفته به نزد سلطان شد و او را از ماجرا آگاه کرد ملک را عجب آمد و فرمود که تاریخ این واقعه بنویسند و وزیر چند گاه به انتظار پسر برادر بنشست از او اثری پدید نیامد آنگاه گفت به خدا سوگند کاری کنم که پیش از من کسی چنان نکرده باشد قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست